رو دوست داشته بشه متاسفانه علیرضا همکف عزیز بنا به دلایل و مشغله که داشت ما رو ترک کرد و جای خودش رو به یک دوست عزیزی داد که امروز هم مهمون برنامه ماست قسمت قبلی برنامه پخش شد و شما هم مثل قبل بازخوردهای خوبی رو به ما نشون دادید و کسایی که بعد قسمت قبل رو گوش می دادن، گوش دادن و نظراتشون رو به ما رسوندن که خیلی متشکریم ازشون مچکرم از همه رسانه هایی که زحمت پخش قسمت قبلی رو کشیدند و به صورت خودجوشانه پخش کردن قسمت قبلی رو ابتدا این برنامه، موسیقی رو شنیدید که تو قسمت های بعدی هم خواهید شنید موسیقیه که محمد دیاکای عزیز به ما قولش رو میده توی این برنامه و قولش رو میده که این موسیقی رو به ما هدیه کنه البته این موسیقی الان قرار داده شده و توی این برنامه محمد قولش رو به ما میده و این قطع رو به ما هدیه میکنه. همچنین محمد قبول کرده که به جا عزیز تنظیم برنامه رو هم دست خودش بگیره که واقعا ازش متشکریم محمد یکی از آرتیست های و از هنرمندان خوب هاپ ایرانه و از هنرمندان مستعد هاپ ایرانه خب همونطور که فهمیدید مهمون این قسمت از برنامه محمد دیاکو تأسیز کننده تشکل مریض هست و تشکل مریض حدودا یک سال و نیمه که داره کارش رو به صورت حرفهی داره ادامه میده و تا الان مجموعه خوبی رو منتشر کردند بهتر که دیگه بیشتر از این صحبت نکنم و خودتون توی مصاحبه در جریان برنامه های مریض تشکل مریض قرار میگیرید و همینطور با آهنگسازی و آهنگسازی هیپاپ بیشتر میشید مهمون این برنامه محمد دیاکو خب سلام محمد جان مهمون برنامه مایی و خیلی هم خوش اومدی. سلام ارز میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه محمد جان از خودت برامون تعریف کن خودتو معرفی کن و بو که چند سال سنته و تو چه رشتهای درس میخونی و تحصیلات ده. من محمد حسین هیدرپور هستم ملقب به دیاکو بیشتر محمد دیاکو هم میشناسن بله درس میخونم تو رشته الکترونیک تازه دیپلمم رو گرفتم و قصد ادامه تحصیل دارم متولد سال 1377 میشه 18 سالم درسته. از کی وارد موسیقی شدی و فهمیدی که به موسیقی علاقه داری و داری تو زمینه موسیقی ادامه میدی حدود 3 الا 4 سال دارم توی عرصه اینسازی کار می‌کنم. کنم یه دو ساله با امید خدا کارم بهتر شده حدود پونزه سالم بود فکر میکنم که شروع کردم به آهنگسازی و یا میشه گفت علاقه پیدا کردم به آهنگسازی سازی آره اه، مدیر یا بهتر بگم که تاسیس کننده تشکلی هستی به اسم مریض درسته راجب مریض برامون توضیح بده که بعد باز نمیخواد زیاد تکمیلش کنی که آخر موساقی باز برای برامین مسئله تشکلت حدود یک سال رو فکر میکنم شیش اله هفت ماه پیش بود که یک دوستی به نام امیر حسین به من پیم دادن و گفتن که بیاید یک آلبومی در سبک تراب و دابستپ جام کنیم من موافقت کردم قرار شد از هنرمندای دیگه هم درخواست کنیم تو این آلبوم حضور داشته باشن از میشه گفت استعدادهایی که اونها مثل خودمون آهنگسازی میکردن بعد من به ذهنم رسید که چرا این آلبومی که میشه گفت نوآوری هست توی هاپ و رپ فارسی از یک لیبل خاصی منتشر نشه تصمیم گرفتیم یک لیبل ایجاد کنیم به نام مریض که تقریبا تکترک یا آلبوم های این یا میشه گفت بیکلام منتشر میکرد همینطور یک اه مجموعه یا ترکی باشه برای نشون دادن قدرت آهنگساز ساز همینطور بتونه کمک کنه به آرتیست رپ کنی که کارشون خوبه ولی هزینهای نمیتونن بکنن برای آهنگساز. ما جوری که گفتی تو یک آهنگ سازی و الان به بهم بگو کلان آهنگسازی یعنی چی؟ آهنگسازی توی رپ چه ای داره؟ یعنی چی هست به درد رپ چه جوری میخوره و چه تفاوتی داره با مثلا اون کسی که مثلا تنظیم میکنه آهنگساز بن مثلا ببین الان مثلا میگیم تنظیم کننده داریم، آهنگساز داریم، حالا مثلا خیلی رشتههای دیگه هست. بهم بگو که چه تفاوتی بین بله مثلا یک تنظیم کننده، یک تهیه کننده یا مثلا یک آهنگساز هست. فرق بین آهنگساز و تنظیم کننده به این صورت هست که آهنگساز کارش ساختن ریتم ملودی آکورد و غیره هستش که اینا رو میسازه یعنی مینویسه موزیک رو به تنظیم کننده میده تنظیم کننده تصمیم میگیره که برای هر نوت، یعنی برای این ملودی برای اون آکورد چه صدای قرار بگیره مثلا برای ملودی پیانو قرار بگیره برای آکورد ویالون قرار بگیره و صداهای درام به چه شکل باشه کیک ها کلاپا ایسنر اینا سلیغ است دیگه چه نحوی باشه که موزیک زیباتر میشه و به هم میخورن یعنی مچ میشن درام ریتم با ملودی و بقیه صداهای موزیک حالا میتونه تنظیم کننده خود آهنگساز باشه و یا یه شخص جدایی باشه البته تو ایران به دلیل نبود امکانات و یه سری مشکلات همه رو یک نفر انجام میده یعنی آهنگ رو میسازه تنظیم میکنه میکس و مسترینگ میکنه و تا آخر ولی توی خارج از کشور به این صورت نیست یعنی آهنگ ساز آهنگ رو مینویسه یا میشه گفت خلق میکنه به تنظیم کننده میده تنظیم کننده صداهای مرد نظر بر اساسه. اون موزیک فضا و درام میچینه تنظیم میکنه به میکس و مسترینگ کننده میده میکس و مسترینگ در بیت در واقع معنی تنظیم صداها یک صدا از چه بخشی بیاد از مثلا به صورت مثال از گوش راست فلان آکورد پخش بشه اجزای درام چجوری باشه درام کیت ها چجوری باشه و تا به آخر خب ببین الان مثلا میگم تو الان آهنگسازی دیگه اه الان مثلا مخاطر ما داره فکر میکنه که خب تو آهنگسازی گیتار میگیری دستت گیتار میزنی پیانو می‌زنی نمیدونم گیتار الکتریک میزنی کلی سازهای دیگه ولی خب فهم گرام توی هیپ هاپ این کار انجام ندن معمولا این کار انجام نمیشه و من بگو چه جوریه یعنی شما مختلف مختلفو نمیارید که مثلا بزنید واسه آره میشه گفت نمیاریم ساز زنده سپل بگیریم بزنیم و توی موزیک استفاده کنیم. البته میشه گفت خیلی کم استفاده میشه توی هیپ هاپ تو ایران و همچنین توی خارج. به صورت مثال خونه بی صخت صادق که آهنگ سازیش رو لانتان انجام داده بود. تمام صداهای استفاده شده ساز و زنده، ریکورد یا سپل گرفته شده بود. استفاده نمیشه یکی به دلیل نبود امکانات یکی هم میشه گفت که اصلا توی سبک هیپ هاپ زیاد این کار معقول نیست میان بیشتر از سپلیک ها و یا ویستی های مشابه اون ساز استفاده میکنن مثلا میان از VST یا بانک صدای ویالون استفاده میکنن که اون صدا رو داره ببین خب بعد الان مثلا آهنگ داریم آهنگی که مثلا تو سبک پاپ استفاده میشه با آهنگی که مثلا تو سبک هیپ هاپ استفاده میشه خب زمین تا آسمون تفاوتشه چه جوری الان مثلا شما که آهنگ ساز هیپ هاپی مثلا آهنگ ساز پاپ هم باشه یا نه، یعنی اینا متفاوته و برامون توضیح بده که چه ساختارهایی داره. آینگ سازی هیپ با مثلا آینگ پاپ. سب سبک هیپ هاپ بیشتر میشه گفت زرب خیلی خشن تری و بهتر کنه میشه گفت پرتری داره. چرا چون قرار رو ضرب کند شه بین زردخوندسه و تا آخر برای همین بیشتر روی ریتم یا ضرب یا درام موزیک هیپ هاپ وقت گذاشته میشه در سبک پاپ بیشتر روی ملودی ها و آکورد ها وقت گذاشته میشه و مانور داده میشه یعنی ریتم خیلی ساده ای داره ضرب خیلی ساده ای داره تقریبا اکثرا یه شکلن و بعد پاپ خیلی قواعد خاصی داره قانونهای خیلی خاصی داره یعنی شما باید حتما بر اساس اون قواعد اون قوانین موزیک رو پیش ببرین بسازین که یک موزیک پاپ به بیاد یعنی اینجور که اگه شما یکی از قوانین رو قواعد رعایت رو نکنین اون موزیک پاپ استاندارد نیست و اجازه کار روی اون وجود نداره یعنی این کار پاپ حساب نمیشه یکم برمیگردیم به سمت زندگی شخصیت یعنی از کی دوست داشتی که وارده یعنی کی فهمیدی که تو یک آهنگساز میتونی بشی چه اتفاقی افتاد؟ حدود 5 الا 6 سال پیش بود که ما تو اوج آهنگ های هاپ و رب بودیم خیلی علاقمند شده بودیم و این سبک رو دنبال می کردیم. جوری که اصلا سبک های دیگر رو گوش نمیدادیم. یه دوستی که هم محله من هم میشه به نام فرنام به من پیشنهاد داد که چرا ما هم نیایم؟ خودمون کار جمع کنیم یعنی بیایم مو هم سعی کنیم مثل همه اصطوره های هیپ هاپ کارمون رو شروع کنیم و ترفامون رو بزنیم من خیلی از تکس نوشتن و خوندن و اجرا و این داستان ها خوشم نمی یعنی بیشتر دوست داشتم صدا خلق کنم کلا با نرم افزار وربرم صدا رو پیچ بدم افکت بدم کلا آهنگسازی و تنظیم رو این کارا کنم دیگه اون موقع ها بود که به سمت آهنگسازی کشیده شدم و امیدوار بودم که من هم کارهام مثل بقیه به اون سطحی که باید برسه برسه خب یعنی ببین الان مثلا میگم مخاطب من شاید دلش بخواد الان آهنگ ساز بشه چه راهی رو باید پیش بگیره باید چی یاد بگیره از کجا باید شروع کنه اینو بگو برای شروع کردن به آهنگ سازی آه البته آهنگ سازی الکترونیک و هیپ هاپ شاید خندتون بگیره ولی باید اول افزار مخصوص آهنگسازی رو نصب کنن نرمفزار های مختلفی وجود داره مثل کیوبیس افل استودیو استودیو وان و غیره که روی ویندوز نصب میشن بعد از که نصب کردن میتونن ویدیو ببینن کتاب بخونن تئوری موسیقیایی یاد بگیرن و کلا کار کنن یعنی آهنگسازی هیپ هاپ به نظر من هفتاد درصدش تجربه است یعنی اگر تجربه نداشته باشین به هیچ دردی نمیخوره من به شخص خودم آهنگسازی رو خودم یاد گرفتم یعنی کتاب خوندم ویدیو دیدم کار کردم انقد ور رفتم که یه سری تجربه ها به دست آوردم و کم کم کارم به سطح استاندارد رسید یعنی حتما الان کسی که بخواد آهنگ ساز بشه باید ساز خاصی را یاد بگیره تو زمینه هیپ هاپ تو زمینه هیپ هاپ حتما لازمه آهنگ سازی اون این نیست که یک ساز رو بلد باشی وگرنه نمیتونه شما آهنگ ساز بشی خیلی از آهنگسازهای جهان بزرگ جهان هستند یا خیلی از نوازنده های بزرگ جهان هستند که حتی قادر به خوندن های موسیقی نیستند ولی آهنگساز و یا نوازنده فوقالعادهای هستند حتما لازمه این نیست که شما سازی رو بلد باشید ولی اگر سازی رو بلد باشید خیلی بیشتر خیلی خیلی بیشتر کمک میکنه به اینکه شما زودتر کارتون خوب و پیشرفت کنید یک کم بیریم جلوتر وقتی که دیگه دیدی که داری حرفه‌ای میشی کارت داره جواب میده با خاننده مختلف شروع کردی به کار کردن از اون حالت برام بگو یعنی بگو که جوری بود تجربهش چجوری به اون نقطه اوج اون تجربه خوب رسیدی این حسوحال که واقعاً نمیشه با کلمه توصیفش کرد یعنی یک حسیه که باید بهش برسین یعنی اینکه شما یک موزیکی رو خلق میکنی که واقعا لذت میبری باز هم از اینکه دیگران هم حس و حال شما رو گرفتن و لذت بردن باز هم لذت میبری واقعا نمیشه با کلمه توصیفش کرد یعنی واقعا عالیه یعنی اون حسی که الان یک آهنگساز داره باز فراتر از اون حسی که یک خواننده داره آهنگساز علاوه بر اینکه یک کار رو منتشر میکنه باز موجب این میشه که یک نفر دیگه باز همون احساساتش رو به اضافه احساسات آهنگساز بکنه و باز اونم با باز اونم یک کار خوب منتشر بکنه آره. و این که اصلا دیگه یک بُعد باحالی داره ببین بیشتر می‌ریم دوباره سمت همون فعالیت هایی که دارید توی تشکلت می‌کنید تشکل مریض گفتی برامون که ایجاد شد اولین مجموعه به نام جرم رو منتشر کردی تحت لیبل مریز از جرم برامون بگو چه شد که جرم به وجود اومد و شهریوره 94 هم پخش شد آره ما با همون آقا عمیروسین شروع کردیم به جمع کردن این آلبوم دو تا ترک من دادم دو تا ترک بیشون گذاشتم بر اساس اون سبک ها از آهنگسازهای های دیگه درخواست کردیم حضور داشته باشن که واقعا اونها گل کاشتن همشون گرفت پس همینجا تشکر میکنم که با اینکه ما رو نمیشناختن اعتماد کردن و توی مجموعه همراه ما شدن خدا شکر بعد از ریلیز و پخش آلبوم. خیلی استقبال شد یه قول معروف ترکون دیگه آره آخه میدونی یعنی ک... توی اون زمان یک سال و خورده پیش این چیزا نبود یعنی منظورم اینه که مجموعه اینسترومنتال وجود نداشت که هنرماندان مختلف توش فعالیت کرده باشن و اجرای ما یه کار نو انجام دادیم. تا توی سبک هیپ هاپ و ترپ اون زمان خیلی کار پخش نشده بود. خوب شد ترفه شدون اثرتون چون من یکی دوتا تا رو بیشتر گوش ندادم، کارای خودت بود. ولی خب باسبوردش چجوری بود؟ یعنی الان مثلاً میگر... خیلی خوبی بود توی این مجموعه و با اینکه تازه اول راه بود اینجوری انتظار نداشتیم که حمایت بشه و این آلبوم شنیده بشه و پسند بشه، خدا رو شد بازخورد خیلی خوبی داشت و یک امیدی شد که ما بتونیم کارهای قوی تر رو بهتری جمع کنیم. یک ما بعد آلبوم جرم. آلبوم سنت چکن منتشر شد چجوری تو فاصله یک ماه شما دونستید دوتا مجموعه اه، خب اه، طبیعتاً بچه ها خیلی شوق داشتن از اینکه حمایت شده بودیم و کارا پسند شده بود داشتیم توی گروه گپ میزدیم من ایدهی به ذهنم رسید. گفتم که بیاید. به جای استفاده از ساس های غربی از ساس های شرقی و کلن ایرانی استفاده کنیم از ستار و سنتور رو ایرانی استفاده کنیم و همون آرتیست های جرم یعنی نه ببینید یه سری از آرتیست های جرم اوز بودن و یه سری به صورت مهمان. نهمان بودید داشته. ببین خب الان این وسط تشکل مریض یکم وارد مریض بشیم چون شما میگی جرم از مریض منتشر شد یعنی لیبل مریض پاش خود چجوری شد که اسم مریض انتخاب شد اصلا این لیبل کجا به فکر رسیده شد یکم دقیق تر برم توضیح بده اول کارم صحبت کردیم ما یه گروهی داشتیم توی تلگرام داشتیم گپ میزدیم در مورد اینکه که اسم لیبل یا تشکل رو چی بذاریم که من دنبال یک اسم سمی و مریض بودم اومدم پیم زدم توی گروه که بچه دنبال یک اسم سمی و مریض هستن آخه این الفاظ خیلی میشه گفت توی هیپ هاپ جا افتاده که یه نگام افتاد به اون کلمه مریض گفتم که خب ما که زندگیمون شده هیپ هاپ زندگی اون شده آهنگسازی چرا نذاریم اسمشو مریض چون شما اگه توجه داشته باشید به صورت مثال ما معتاد مثلا تلویزیون دیدن هستیم تلویزیون دیدن به صورت مثال یک بیماری دیگه همینطور که اعتیاد داری به تلویزیون دیدن یا بازی کردن همینطور هم مریض اون هستی بیماری اون رو داری پس قطعا ما هم موتاد موسیقی یا میشه گفت مریض موسیقی هستیم خب پس الان منم توضیح دادی مشخص شد که مریض که تولید شد آلبوم جرم و سنت چکن هم اومد میرسیم به یکی از بهترین مجموعه این اینسترومنتالی که تو ایران منتشر شد مجموعه انسان با تداترک بسیار زیاد و استقبالهای های فراوان راجب موضوع انسان هم برام توضیح بده و همینجور راجب اتفاقایی که برای رخ دادن انسان به وجود اومد این هم برایم. من توی خونه نشسته بودم مشغول کار زدن بودم مشغول آهنگسازی بود اه که یه دیدم همون آقا امیر همون شخصی ساره. که باشی تشکل رو ایجاد کردیم پی ام داد و در مورد آلبوم جدید صحبت می کردیم که کلن یک آلبوم دیگه ای بدیم استقبال سنت چکن هم خیلی خوب بوده وسط حرفت اون شخص هنوز هم هست تو توی مریض یا نه درسته بله امیر به بذار خب بگید. بعد من اون کاری که زده بودم رو خروجی گرفتم اکسپورت گرفتم برای ایشون ارسال کردم فرستادم ایشون گوش داد خیلی از کار خوشش اومده بود و تقریبا توی سبک کارهای میشه گفت احسان زیا یا احسان آتور عزیز بود که یهو امیر جان گفت که چرا نیاییم که یک آلبومی ببندیم که ترک ها به هم مربوط باشه یعنی از ترک اول گوش داده بشه تا ترک آخر و هر کدوم حس و حال خاصی رو داشته باشه ولی به هم رفت داشته باشه فقط بیت نباشه اینسترومنتال باشه یعنی بتونیم با ساز ها با نوت ها با صدا ها جای خواننده رو پر کنی احساس نشه که خواننده وجود نداره، احساس نشه که صدای خواننده خالی هست. بعد اون ترکی که من براشون فرستاده بودم حس حال یک تولد یک بچه رو داشتنی حس حال خیلی خوبی رو داشت که امی و گفت بیایم یک مجموعه ای ببندیم به نام انسان که از تولد تا مرگ یک بچه رو آهنگسازی و سازی کرده باشیم و از آهنگسازهای دیگه درخواست کردیم تو این آلبوم حضور داشته باشن این مجموعه جمع شد و خدا رو شکر خیلی خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت به دلیل درپ داشتن ترک ها و فضا دار بودن ترک ها بر اساس اسم ترک ها. یه آهنگساز با تجربه تو این آلبوم بود اردلان سیزده راجبش برام توضیح بده چی شد که اومد و چه بهش پیشنهاد دادی و اون قبول کرد؟ اردلان جان واقعا پسر گل و مشتیه. من ایده ایشون رو داشتم. بهشون پی زدم که ما یک آلومی داریم جمع نکنیم به این صورت که میخواییم از تولد تا مرگ یک بچه رو آهنگ سازی و فضل سازی کنیم اردالان جان بدون اینکه خودشون رو بگیرن و یا بهونه بیارن قبول کردن و قرار این شد که یک ترک رو با هم بسازیم یعنی به صورت فیت باشه ایشون پایه موزیک رو ساختن برای من ارسال کردن من حرکات و یه سری کارهایی که مخصوص به خودم رو هست روی این ترک پیاده کردم و یک ترک عالی و واقعا نابی شد ببین اسم آنکسازه این آلبوم رو میتونه برام بگی چون تدایشون خیلی زیاد بود یعنی تعداد ترک خیلی زیاد بود انکتصاش رو برام بگو و به نظرم همین جوری که راج توضیح دادی توضیحدادیم تک تکشون توضیح بده. از جمله خودم بودم دیاکو، زال، Aسیده، پاک، امیرشاه و علی رزان. آره. بعد یک لحظه فلشمک بزنیم به عقب من نف... نتونستم بپرسم که چرا لقب تو گذاش دیکو این اول برام توضیح بده والا همون پنج شیست ساله پیش که ما تصمیم گرفتیم وارد این عرصه بشیم خب قطعا هر کسی دنبال یک لقبیه برای خودش من درگیر این بودم که لقبم رو چی بگذارم که یک دوستی که الان نمیخوام اسمشو بیارم به من پیشنهاد داد که اسمت رو بگذار دیاکو منم حدود پنش سال پیش اونقدری گوش نداده بودم و خیلی میشه گفت از هیپ هاپ اطلاعاتی نداشتم که بدونم شخصی به نام دیاکو هم وجود داشته و آرتیست بودن منم دیگه تصمیم گرفتم به احترام اون دوستمون لقبم رو تغییر نمید اولین کار با کلامتون کی دقیقا منتشر شد و اسمش چی بود از چه کسی بود و بعد چه کسی بتون پیوستن توی این کار فکر می‌کنم حدود هفت یا الا هشت ماه پیش بود به اسم درشهر بود کار که این ترک یک سال قبل جمع شده بود و ما دیدیم بهتره که پخش کنیم کارویه که ارزش پخش رو داره و اومدیم از لیبل این کارو پخش کردیم حدود یک ماه بعدش اومدیم یک ترکی دیگه به عنوان مسقرست رو پخش کردیم با انسازی خودم بود که یه جورایی داشت یه سری اتفاقا رو مسخره می‌کرد. ببین الان مثلا من آهنگسازم مثلا میگم الان آهنگساز که نیستم ولی خب اگه مثلا من آهنگساز بخوام بیام توی مریض عزب بشم چه جوریه؟ چه درگاههایی دارم؟ چه جوری کار بفرستم؟ یا اصلا شما عزبری میکنین کسی رو مثلا قبول میکنید یا نه چه جوریه؟ والا الان که تعداد اینایی که اسم خودشونو گذاشتن استعداد خیل خیلی زیاد شده و همینطورم زیاد هست کلا ببین الان دیگه ما از ماشاءلاح... تعداد شنوندا بیشتر داریم یه چیز جالبی که هست اصلا نقد رو نمیپذیرن یعنی اگر ناراحت هم میشن بعد میگن چیکار میکنن اسکرین هم میگیرن میذارن که اه آقا من این خوبی فلان مثلا منو قبول نکردم. والا اوزگیری ما فعلا اوز نمیگیریم یک اوز رپر هم گرفتیم چار ماه پیش که ایشون یک سال بود سعی میکرد که وارد تشکل بشه و ما هر روز ایشون رو نامیتر قبل میکردیم که بالاخره کارش بعد نصاب رسید سمج بود دیگه برس. هی خودش میومد هی باز فقط هم بحث کاری بره. نیست یعنی اگر از فیلتر بحث کاری رد بشن ایشون بحث بعدی اخلاق و کلا شخصیت هست بش بفهمیم ایشون واقعا میخوان کار کنن و کلا هدفشون این نیست که بیان با لیبل یه کاریو رو جمع کنن و پس فردا از لیبل خارج بشن یا بخوان کلن بذارن این کار کنار خب الان مثلا ببین یه کسی که خیلی کارش نابه مثلا دیگه درست. توی اون درجای خیلی خوب و باله به قول خودت هم الان داری میگی میخوای آلبومی جمع کنی که اون استعدادهایی که مثلا معرفی درست. نشده باشن یا نا... گمنام باشن بیان توش الان مثلا تو همون آلبوم شما یه استعداد میگیری کارش خیلی فوقالعاده است امکان داره که مثلا ببین اصلا ببین بهمون بگو چجوری کسی که بخواد بیاد تو اون آلبوم چجوری کارش رو برای شما ارسال کنه چون این فراخونه یا خودتون ببینید یا خودتون می‌گردید دنبالش دیگه این اتفاق چجوری میفته چون الان من مطمئنم کسای هستن که استعداد لفظی هم نیستن خیلی از این برنامه رو گوش میدن چون شما کارتون آهنگسازی ترجیحا اونام سازی که برای تجربهشون دارن این برنامه گوش میدن آره ببین میخوام بدونم که الان کسی که حالا شاید لفظی نباشه استعدادش ولی خب قدرتمند باشه یک راهی بذارید به نظر من حالا نم نظر خودتون چجوریه یه کاری بکنید که اینا بتونن یا ال... اصلا تو مریضم که نیومدن تو آلبومتون باشن چجوری این فراخوان میدین خودتون یا الان اینجا میگم کارهاشونو به ایمیل مریض ارسال کنن info@mriz.me ارسال کنن ما کاراشونو گوش میدیم اگر به اون سطحی که واقعا ما خودمون در نظر داریم رسیده باشند و باشن با ایمیل باشون کانکت میشه محمد جان ما از رپرهایی که اومدم توی برنامه‌مون درخواست کردیم که یک فریستایل به عنوان یادگاری به برنامه ما هدیه بدن اما تا الان آهنگسازی من هرچی فکر میکنم درست. چیزی به یادم نمیاد که ازت درخواست کنم درست. خودت چه چیزی رو دوست داری به برنامه ما بدی و اصلا دوست داری این کار بکنی من مصاحبه شما رو که کار قبلی گوش دادم دیدم یک موزیکی اول کار پخش میشه من به نظرم بیام یک موزیک اختصاصی برای اول برنامه شما بسازم ام. که هم به نفع خودمه هم یه جورایی میشه گفت تشکر میکنم از بابت مصاحبه خیلی هم ممنون سوپرایس بدم باقرم خیلی شکرم خیلی خب حرف آخری داری یا اگه جایی هستش که من از قلم انداختم بگو یا که دیگه خود میدونی فقط یک حرفی دارم با اونایی که میخوان شروع کنن همینه میخوام ازت بپرسم یادم رفته <تصفيق> هیچ ف... نامید نشن اصلا نامید نشن و اینکه اصلاً اصلا به حرف دیگران توجه نکنن اگر انتقاد خیلی بدی باشون با میشه نامید نشن <تصفيق> کارشون رو ادامه بدن چون یکی که تا وقتی که خورد نشه نمیتونه خودشو دوباره بسازه آره. کار ادامه بدن ناامید نشن کارهای آنگساز های بزرگ و خیلی زیاد گوش بدن با دقت گوش بدن محمد ببین یک مبحث ده. خیلی مهم یادم اومد که اصلا این اگه نپرسم برنامه امروز ناقصه دو تا کار مبحث. منتشر کردی از کارهایی که مهدیار قبلا اونا رو ریلیز کرده بود ریپروتداکتش کردی به حال معروف و اینا انگار میگه که کپی برابر اصل بودن انقدر خوب آهنگسازی و چینده شده بود که هر کی گوش میداد میدوستش که ندونه این کار خود مهدیار از کجا پخشش کرده آره شکلی اتفاقا هر کی گوش میداد در نهایت مید میگفت که آره چه اومدی صدا بهرام بیا پخش کن از این کارو حذف کردی و بی تو قرار دادی. من از همین جا بگم که با هر نرم افزاری با قول ترین نرم جهان هم با بهترین سخت افزار بیاین این کار انجام بدیم آخرش یک ته وکالی از اون خانه. یه چیزایی میمونه دیگه و یکم کیفیت کلن کار میاد پایین اصلا مشخصه صدا شده از روی این آهنگ اه من آه، کار نگاه از آلبوم اشتباه خوبه که گوش دادم دیدم میتونم این رو بازسازی کنم و حدود خیلی زمان زیادی هم بود در زیادم نیست ولی فکر میکنم من سی الا چهل ساعت بکر میکنم وقت گذاشتم بود برای اولین کار و خیلی هم کارم بهتر شد یعنی ترفندای محدییا رو آجانی و کسب کردند خیلی باید گفتن که ثبات کنیم کار تو اثبات کردی برایشون یعنی گذاشتی که خودشون تو کف بمونن کار نگاهو میگفتن که شما اومدی نمیدونم په آهنگ و بوریدی بریدی و باج بیتو ساختی که من تو سامکلد خودم اومدم نوت‌های همون آهنگ رو که درآورده بودم با یک صدا سنتور دیگه و صداهای دیگه یه بیت یه امضا گذاشتم برای خودم فضا درسته قرار دادم که بگم من واقعا این کارو کردم یه زورایی میشه گفت یه کار بزرگ بود و خیلی هم داشت علاوه بر اون اون ریمیکسی که از بهرام زده بودی ریمیکس افسوس اون هم کار بزرگ بود و منفجر که شد اصلا اون اونم توضیح بده برای اون. اونم یادم رکھتی <تصح> <تصح> ریمیکس بهرام هم که من کار افسوس رو خیلی خودم به شخص دوست دارم یک شب مثل شب قبل داشتم گمه قهران رو روش رو که تصمیم گرفتم این آهنگ رو ریمیکس کنم و در میشه گفت یک بیت دیگه زیرش بستازم دنباله این رفتم که چجوری میشه وکال رو به دست آورد خیلی تحقیق کردم حدود دو ماه و بعد شروع کردم به ریمیکس کردن و این ریمیکس رو که پخش کردیم و خدا رو شک خیلی خوب میرسیم به آخرین سوالم یعنی اون حرف آخری که من میخواستم اون سوالی که موزم ازت بپرسم دلوقتي. بود. اینکه اگه یک روز به اون درجه‌ای رسیدی که مثلا می‌گم یک شخصی مثل بهرام بیاد بهت بگه که این آهنگ رو برای من بساز چه واکنشی داری؟ دیگه اونجا مثلا به چه فکر که به کجا رسیدی؟ اینو برام یعنی مثلا ببین دوست داری با چه خاننده مطرح کار کنی و همچین اتفاقی در آینده از طرف اون برای تو بیفته خب طبیعتا هر آهنگسازی دوست داره با استوره های رپ و هیپپ فارسی کار کنه و این باعث افتخار هر کسی که کار کنه با استوره ها به صورت مثال میشه گفت سید قانع عزیز که الان دارند برای موجاز و هیچکس آهنگسازی میکنند یه جوری شوق و انگیزه زیادی دارن قطعا تو این کار که برای هیچکس دارن آهنگسازی می‌کنن منم امیدوارم که به اون درجه برسم که بتونم برای یکی از بزرگای رپ فارسی آهنگسازی کنم. ما هم از طرف بچهای تیم گفتگو هیپ‌هاپی و مخاطبین برنامه برات دعا می‌کنیم که به این هدفت برسی و در آینده موفق باشی حرفی چیزی هست من مرزی. در خدمتم و بعد که اگه دوست داری خداحافظی کن با شنونده بر. فکر می کنم تمام حرفا رو زده باشم مرسی از شما با این مصاحبه و مرسی از شما شنوندگان عزیز بابت گوش دادن به حرفای بنده حقیر خوادحافظی میکنم مچکر که قبول کردید توی برنامه و باشید انشالله که محفظ باشید خب دوستان عزیز متشکر که این قسمت رو هم با صبر و حسله خوبتون گوش دادید و امیدوارم که پاسخ سوالهاتون رو گرفته باشید و اگه استعدادی در آهنگسازی دارید به قول محمد عزیز دل سرد نشید و ادامه بدید و بدونید که بدون تجربه به نتیجه نخواهید رسید و باید تجربه کنید شکست ها بخورید و تا بتونید موفق باشید بازم تشکر می کنم از عزیزانی که این قسمت رو هم رسانه هایی که این قسمت رو پخش میکنن عزیزانی که این قسمت رو به اشتراک میگذارن با دوستانشون اگه خوشتون اومد لطفاً به صفحه اینستاگرام ما به آیدی هیپ هاپ انترویو مراجعه کنید و نظرتون رو زیر پست مربوط به این قسمت به ما بگید تا ما بتونیم برنامه خودتون رو بهتر کنیم بیشتر از این دیگه وقتتون رو نمیگیرم ممنون که گوش دادید تا قسمت بعدی خدا نگهدار